بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورزوا بالحياة الدنيا و تمعل نو به آن و لذین آنهم انا عیاتنا قافلونه اولاکه معظاهم نر به این دوتایی ای یک جمله است یک جمله است ان لَذِينَ ان او مشبحتون بالفعل الذين اسميش عطف به جای این است عطف به جای این است یعنی ان و ولذين معلوم که معواهم النار این جمله خبر ان است اولایک مبتدا معواهم النار مبتدا و خبر این جمله خبر اولایک. معواهم نار خبر اولایک هم رابطه شه اولائک معواهم نار خبر این نست اولائکه رابطشه یعنی رابط اسم اشاره دوره که منباب اسم اشاره رابط شده دقت کردی چی از کردن یا نه اولائکه اسم اشاره جمله اسمی است که خبر واقع شده هم رابط جمله اسمی است که خبر واقع شده برای اولائکه لا یرجونه یعنی لا یعملونه امید ندارن مشخص دیگه رجا یرجون یرجوانه یرجون این این الازین لا یرجون فعل مزاره یعنی در طول حیاتشون امیدی ندارن لقاعنا مفعولشه م? خب این لایر جون لقائنا یعنی چی یعنی امید ندارن به ملاقات ما لقائنا یعنی ان لقائهم ایانا یا لقائنا ایاهم یعنی رو در رو شدن ما رو به خب قاعدتاً یا باید یه موضع اینجا تغییر بگیریم دیگه به نظر معنا یعنی مثلا لا یارجونا حسن لقائنا امید به اینکه آه ما باهاشون خوب برخورد کنیم امید به ثواب و بهشت و روی خوش از ما نداره یعنی نمیخوام که با روی خوش ما برخورد کنه حسن لقائنا همونطور که مؤمنین امیدوارند که با روی خوش ملاقاتشون بشه اینها این امید ندارن. یعنی نمی پسندن اون چیزی رو که مؤمنین می پسندن. امید ندارن به اون چیزی که مؤمنین امید دارن یا لا یرجونن سوالقه ها یعنی امیدی ندارن به این که ما باشون بگیرد بعد برخورد کنیم یعنی نمی ترسد از برخورد بد ما یعنی خلاصه ای کلام اینه نه امیده به خیر ما دارن نه امیده به شر ما دارن نه خوبشون میخوان نه بدشون این لایرجونه فعل مزاره ها استمراره بعد ورزو رزو, رزو اتفاست به جای لایرجونه و رزو بالحیات دنیا این مازیه از هم ما اول پایه رو گذاشتن که ما حیات دنیا رو میخواییم و رزو حیات دنیا بعدم و اتمعنو بها با این حیات دنیا هم که ساز شد اتمعنو یعنی آرامش گرفتن باییم با حیات دنیا یعنی این چیزی که بهشون دادن قلبشون باهاش بگید آروم شد راضی شدن به این حیات دنیا در مقابل آخرت بعدم هم با همین بگید آرامش یافتند و کیفشون کوک شد و در طول مدت حیاتشون هم اصلا فکری نسبت به آخرت نداشتن این یک قسم و الازین هم آن آیات ناغافلون و کسانی که نسبت به آیات ما غافل هر کارشون هم بکنی بیدار نمیشن معلوم و نظر حاضر نیستم فکر کنن در مورد آیات ما هر جوری هم این ها رو بخوای به راه بیاری راه نمیادن انا آیاتنا متعلق است به قافلون مقدم شده به خاطر که سج آیت رو نسید شد از آیاتنا هم مبتداست قافلون خبرشه انا آیات متعلق یعنی اینا رو هر کاری هم بکنی به راه راست بر نمیگردن. گردن که اینا سرانجامشون چیه؟ که اسم اشاره چی ها برده؟ دور ها برده و این اسم اشاره دور برای تحقیر این هاست این آدم ها این آدم های حقیر معواهم انار جاشون انناره لام جهنم اینها جایگاهشون جهنم اما جالبه اولای که معواهم انار، به ما کانو یک سهون. به خاطر اعمال خودش اعمال اینها برای اینها بگو جهنم رو به دنبال داره الف لام تعریف اهل الف لام بعضی ها اینجا میگن اولائکم معواهم النار اینا جاشون جهنمه وقف میشه این به ما کانون یکسبون در واقع استناف بیانی یه جمله جدا میشه یعنی دیدیم مثلا در قرائت اینجا وقف میکنه بعد میخوایم یعنی جوزو جوزو یعنی چی مجازات میشن آ و جازی مجکولش میشه چی جوزیه جوزیا جوزو ها مجازات میشن به ماکانو یکسو یا بگو سیوجزا ونا به ماکانو یکسو در آینده اینها رو به خاطر اعمالشون شد اینو تا اینجا داشته باشید که ان اللذین لا یرجونا فقط روی لا یرجونا بود که مزار آمد ولی فعل هایی که بهش عطف شده بود ماضی بود اون مضارع اومدنش به خاطر استمرار بود ولذین هم عن آیات ناغافلون عطف بود اولای که من تحقیر به شکل اسم اشاره دور آمد رابطه یک جمله اسمیه خبر اسم اشاره شده رابطه دیگرش زمیر درسته؟ خب اون, اون نشون میده که رضوی اول بوده یعنی پایه رو گذاشتن رضو به حیات دنیا دیگه رضایت به قول این راضی شدن به این یعنی سند دنیا رو گرفتن درست شد بطمان نوبه ها به همونم چسبیدن این دوتا سبب شد که در طول حیاتشون دیگه هیچ باوری نسبت به قیامت نداشت. مشغل شد؟ یعنی رضایت اتفاق افتاد. وقتی بهشون بعد آیات رو دادن، همه چی رو دادن، رضایت اتفاق افتاد. بعدم به همون بگید اطمینان بیده کن چون گاهی اوقات رازی میشه ولی بهش اطمینان پیدا، نمی‌کنه ممکن متزلزل بشه نه اینا راضی شدن و خشنود شدن و بهشم چسبیدن بعد دیگه در طول مدت عملشون هیچ نه از عذاب خدا خوفی داشتن و نه بگو نسبت به حسن برخورد خدا امیدی داشتن هیچ نه ثواب خدا رو خواستن نه ایقابشون اینها جاشون قطعا جهنمه و دلیل برای این که در جهنم هم خواهند بود اینه که به ما کانو یک سبون. این به ما کانو یک سبون میتونه مامای موصوله باشه یعنی به لذین کانو به لذیکانو یک سبونه یعنی اعمالی که اینها کسب میکردن تو دنیا میتونن مامای مستریه باشه یعنی به کسب بهه. به خاطر کاراشون بلیق موصوله بهتر خب قرآن عادتش برینه. که سفید و سیاه رو بگید با هم نشون میده خیر و شر و با هم خوف و رجا رو با هم این الان قسمت تاریک بشری بود در مقابل آیات الهی و انبیاء اما اینن لذین آمنو و عمل و سالهات یهدیهم ربوهم به ایمانه بله سجع آیه آخرش نونه دیگه قافلون یک سبون معلوم شد براتون یا نه اینها آخرشون با هم قطع باقش خب ان لذین آمنون اما اونایی که ایمان آوردن آمنون مشخصه لذینه اسمه اینست آمنون فعل و فائل و آید سلام ها و عملو از صالحات علفلام داره جمم هم هست یعنی اینها تاجرند هرچی صالح گیر بیاد بگید نمیگذارن از دستشون درده دنبال کار خوبه و عملو صالحات اینا چی میشن؟ اینها یهدی هم یهدی هم خبر نسا فیل مزاره هم اومده یهدی هم رب هم به ایمان هم این بابای سببیت به ایمان هم متعلقه به یهدی هدایت میکنه اینها رو پروردگارشان ربم گفته ها رب یعنی اون کسی که بگید اینها رو تربیت میکنه زیر نظر داره دوستشون داره مربوب او هستند پروردگارشون اینها رو هدایت میکنه به سبب ایمانشون آه. نه به سبب اعمالشون به ایمانه اینا دوتا چیز داشتن ایمان عمل درست شد ایمانه سرمنشه چی شده عمل شده پس عمل هم داره اما اونی که واسطه همه اینهاست بر اینکه اینها برن اعتقاداتشون ایمانشونه به واسطه ای ایمانشون پروردگارشون اینها رو اداید پس اینا هر روز بگید وَلَّذِينَ جَاهَدُوْفِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ هی هر روز اینها بر هدایتشون بگید افزوده میشون باشه بایه سببیت یعنی اینکه که هدایتشون میکنه یعنی چی؟ یعنی هر روز اینها رو استوارتر در ایمانشون میکنه موقفخترشون میکنه راه رو بهشون بهتر نشون میده یهدیهم ربهم به ایمانه خب این هم قسمت سفید موضوع تجری من تحتهم على رو، فی جنات نعیم این جمله رو من ترکیب می‌کنم بعد اون موقع اون مبحث بعدی میکنم تجری فعله فعل مزاره من تحت هم متعلق است به تجری حالا من تحت سراره هم از زیر اونها جرایان داره یعنی از زیر تختاشون من تحت هم یعنی من تحت بیوته هم ها من تحت اشجار هم در هر حال بخواد بگه اینها بگید نهرهای آب را از زیر درختای خودشون، از زیر درختایی که در اطراف اونهاست از زیر خانه هاشون، من تحت هم و از فموزاف. علاوه آنها، علاوه مجاز اعلیه دیگه نهر که جاری نمیشه نهرها، ها؟ بلکه منظور بگید. آب نه حالی، یعنی میآق حالانهار. حالانهار یعنی نهروی بیشتر. پس متوجه شدی نه؟ یعنی استفاده ی به حالانهار آم. مثل اینکه اسناد دادیم به مکان. در صورتی که این فیل مال مکان نیست، مکان جریان بیدار میکنه. چی جریان پیدا میکنه؟ آب داخل اون مکان. یعنی خودش یه نوع اجازه رو میاره. یعنی بوده تجری من تحت سروره هم از زیر تخت های دارد آبهای نهرهای بهشتی یعنی ها بر تخت ها و خانه هستند که بر روی نهرها بگید بنا شد فی جنات نعیم تجری من تحت هم علانه ها رو فی جنات نعیم این فی جنات متعلق به تجریست تجری فی جنات نعیم من تحت هم بگید علن در بهشت الهی در جنات نعمر جنات نعیم در اونجا از زیر تخت های اینها آب نهرها جاری است بعضی هم فی جنات نعیم حال باشه از برای الان ها جار مجرور بعد از معرفه میشه چی؟ نهرها جاریست در حالی که اون نهرها در بگید جنات نعیمه ولی به نظر میاد متعلقه به تجری باشد معنا بگید خب اما این جمله این جمله تجریب تحت هم الانهار چه نقشی داره میگم چه نقشی داره یعنی چه جایگاهی داره بعضی ها که این جمله بیان، بیان بیان بیانه تفسیر، توضیح برای یهدی هم رب هم به ایمانه این که پروردگارشون اونها رو هدایت میکنه آن یعنی میرسوندشون به سواب میرسوندشون به ثواب به می میرسوند. بعد این سواب این یهدهیم را به هم به ایمان هم گوش کنید یهدهیم را به هم به ایمان هم یعنی یوسی به هم یوسی با سه نقطه یوسی به هم را به هم یعنی به اینا سواب میده برای خب خود ثوابه چیه تفسیر میکنه یا همچین بگید؟ جایگاهی رو میده یعنی این جمله میشه بگو چی؟ مفسر. مفسر بیان براقر چون یهدی هم هدایتشون میکنه یعنی که هدایت میکنه به کارای خوب به ایمان هدایت به کار خوب و ایمان چی میشه؟ منجر به ثواب میشه خب ثوابه چیه؟ همین تجری من تحت همول انهار فی جنات نیم بعضی گفتنیم بیان و تفسیره برای یهدی هم چون یهدی هم به برای یوسیبو هم بعضی ها گفتن مستنفه جمله جمعه است یعنی وقتی گفته یهدی هم ربو هم به ایمان هم پروردگارشون به ایمان اینها به واسطه ایمانشون اینا رو ادایت میکنه جایی این سوال پیدا شده ها؟ خب اینها در آخرت وضعشون چیه؟ گفته اینه مستنفه بیانیست تالت شد چند تا؟ دوتا ایکی تفصیل یکی مستنه بعضی رو گفتن حالیه است زمیر این حالیه است از زمیر مفعول یعنی یهدیه فلجنه مشغل شد فی جنات هدایت میکنه اینها رو درست شد مشغل شد, مشغل شد؟ یعنی حال است اگه حال باشه نگاه کنید یهدی هم رب هم به ایمان هم، هدایتشون میکنه پروردگارشون اینها رو به واسطه ایمانشون در حالی که تجریم تحت ملن ها اون موقع دیگه یا باید بگیم حال به اعتبار آینده است مشاهدش و حال زمانش با زمان آملش بگید فرق میکنه و چه چی میگم؟ یعنی حال زمانش آینده است یعنی هدایتشون تو دنیا میکنه در حالی که در آخرت تجریم تحت همونم گرفتی چی گفتم؟ یعنی در واقع حال زمانش با زمان عامل یکی نیست مثل در تدخلون نهلمس جدال حرام انشاءالله آمنی آمنی زمانش یکی محلقین رو او سکن و مغصرین زمانش بگی زمانه بعد. چون زمان که داخل میشن اون زمان اینها بگو سر نمیتراشن اینها تفسیر و تعلیق، تحلیق نمی کنن. بعد میخوان بکنن مشاهدشو به این میگن حال چی چی قبلا گفتیم حال مقدره یعنی در تقدیر اینه یهدی هم هدایتشو مقدره بعضا گفتن نه نه نه بلکه یهدی هم رب و هم به ایمان هم یعنی هم رب هم به ایمان هم خود هم مال دنیا نیست یعنی يهديهم هم رب و هم ما قصدو مشخص شد؟ یعنی در بهشت خدا اینها رو به واسط ایمانشون به اونی که میخوان میرسونه. یهدی هم فلاخره به ایمان هم. مشغل شده نه؟ یعنی یهدی هم اون فی جنات نعیم هم مال یهدی هم مال تجریب. یعنی یهدی هم به هم به ایمان هم فی جنات نعیم تجریب انتحت هم الانها رو فی جنات نعیم. گردش یعنی این میشه خدا در بهش اینها رو راهنمایی مثل مثلا که میو... چیز میکنن راهنمایی میکنن این گردشگرا رو میبرن ها خدا در بهش به واسطه ایمان اینها اینها رو به واسطه ملکهای خودش راهنمایی میکنه به اون جایی که اینا دوست دارن میرسن به جایی که بگی در زیر تخت ها و در زیر کاخای اونها نغها هدایت مال توی بهشته یعنی یهدی هم رب بهم به ایمان هم فیل آخرت در آخرت خدا اینها رو بگید جوری راه نمایی میکنه که به بهشتی میرسند که از زیر درختانش نهرها جاریست چون؟ خب ببینید بعضی ما ماله میخوایم درستش بکنیم که در یا باید با حال مقدره درستش کنیم بگیم هدایت مال دنیاست درست شد؟ ولی در حالی که در آخرت هم این, ها این ها؟ یا باید بگیم هدایت و تجرید دوتاش یه زمان داره هر دو ماله بگید آخرت فی جنات نعیم سرش نزا داره یهدی هم و تجری یعنی یهدی هم رب بهم به ایمان هم فی جنات نعیم در حالی که تجری منطقه هم الانهار و فی ها بله در این حالت ماله با کار من دارم از لحاز ادبی احتمالاتی رو که موجوده بیا می بعدم بعد کردیم که ما میایم بینیم هارش کار میکنیم به شکل طبق بندی میگییم. وقتی این شکل بگیم بگیریم شما باید بیایم یکی از کارهایی که یه مفسر یک عرص. وقول قول محروع قرآن شناس باید داشته باشه در این رابطه اینه که به طوانت کند در بین نظرات متعددون این همه این نظرات در محله اول نیامده ما نظر قوی ضعیف نر نظر اولمون همون نظره بگید اول بود که تفسیر از تو بیان بعد مستعنفه رو هم بگید خیلی راحت فضی رفتیم دیدیم اشکان حالی یه رو گفتیم به دست انداز یا باید حال مقدره درست کنیم یا باید بگیم هدایت منظور هدایت در بگید آخرته خب حتی بعضی دیگه یک نظر دیگه ای دادن در مورد این تجری درست گفتن این تجری خبر دوم ان است یعنی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات یه خبر اینه یه خبر به ایمانه؟ یه خبر دیگه اینه ان خبر دیگه و عمل خبر دیگه اینه تحت همول انهار بی جنات اینه خبره بگید گرفتید یا نه؟ یعنی یه دیگه رب بهم به ایمانه هم مال دنیا درست شد نه؟ ها؟ تجریمن تحت هم الانهارون ماله بگید آخرش. آخرش. آخرش. آخرش. آخرش. اون خبر انده اینم خبر خبر اول خبر دو این باز از نظر ادبی اشکال داره چرا؟ چون اینجا جای وصله یعنی اگر این خبر بوده یعنی بوده چون دوتا فیل هر دو مزارن هر دو هم متعلقه بگو به همین افراد الذین آمنو هستند جاشه که بگید جاشه که دومی و اولی بگید حتف بشه بشه یهدی هم رب به ایمان هم و تجری یعنی اگر قرار بود خبر باشه جا جای وصل بود آه؟ چون هم لفظن ارتباط دارن با هم هم معنن ارتباط دارن چون ارتباط لفظی و معنوی هر دو دارن پس بنابراین جا جای آوردنه حرف عطفه که این دوتا رو در اعراب شریک کنه یکی از جایی که جمله ها رو میکنن قصد تشریک در اعرابه که هر دوتا جمله بگی از نظر اعرابی بگی با هم شریک بشن اون بشه خبر اینم با عطف بشه نمیدونم چند تا خود شد تا اونجایی که تو زهنم ها از این تا. بیان و تفسیر خیلی راحته خیلی قشنگه چون یهدی هم رب هم به ایمان هم ها؟ یعنی یوسیب هم چون هدایت بدونه مست که نداره بعد ثوابه از چه نوعه تجریم انتا ثوابه از نوع بهشته بهترین چه؟ مستنف هم خیلی خوبه که تجری در واقع جواب این رو میده که حالا یهدی هم سمه یوسیب هم چی بهشون میده تجریمن تحت همولانه حال باید یا مقدره درست کنیم یا باید بگید هدایت رو در قیامت قرار بدیم و اگر خبر هم قرار بگیرد خبر بعد از خبر بخواد بشه مختزاش عدیم تجریمن تحت همولانه ها بی جنات نگیم دعوا هم فیها صبحانک اللهم نه و تحییتو هم فیها سلامون و آخر و ان الله رب العالمین یعنی دعاهم هم یعنی دعا, هم هم یعنی دعا هم گفته در بهشت فیها میخوره بکی؟ في جنات النعيم دعواهم فیها فیها متعلق به دعواهم سبحانك اللهم این سبحانك اللهم در واقع جملش خبر این کل عبارتش سبحانك اللهم خبر برای دعواهمه یعنی گفته اینها سخن اینها در بهش چیه بگید سبحانك اللهم سبحانکی که میده مقبول مطلق جای فعلش نشسته یعنی نسبح و که یا الله اللهم یعنی یا الله یعنی اینا تو بهشت سخنی جز تسبیح الهی بگید نداره حرفشون تسبیحه سبحانك الله گرفتی چی چی شد یا نه این میرید که از نظر ترجمه‌ای ترجمه ای این سبحانك الله هم مثلا داخل ویرگول این آ ننه این گیومه میشه خبر یعنی تو ترجمه هم باید بگی چی سخن ایشان در بهشت سبحانك الله مست مثلا اینجا میگی چی میگی گفته او گفته او در قنوت اللهم مثلعل محمد و آل محمد است دیگه اینو ترجمه بگیر نمیکنه اینو میگن یعنی را حرفشون تو بهشت دیه تصوی حتی به حزییت توی اینجا گفتن که اگر یه موقع یه دونه به قول معروف ملکیرم برا کاری صدا میکنن ها به جای اینکه بگن تال بیا مثلا یا غیره میگن صبحها اللهم اون یعنی حتی اینقدر به قول خودمون توی قضیه گرفت رفتی چیز این صبحانه که اللهم رو من ترکیب کردم مثل که بگم کلامی کلامی لا اله الا الله کلامی لا اله الا الله یعنی سخن من لا اله الا الله است گرفتید یا نه این لا اله الله داخل گیومه است این لا اله الله شده خبره بگید کلامی اینجا دعواهم یعنی کلامهم قولهم فیها دل جننه، سخن اینها در بهش اینه صبحانکالله هم حالا صبحانکالله هم منم مماردتون ترکیب کردم. و تحییت هم خب حرفشون که با هم دیگه میزنن لغم نیست تو بهش دیگه همش تصفیح و تقدیس الهیه تحییتشون که همدیگر رو می‌بینن چیه و تحییتو هم فیها سلامون ها تحییتو هم فیها بگو سلام. یعنی همدیگر رو که می‌بینن ملائکه اونها رو می‌بینن ها سلام است این هم باز سلامون میشه خبر تحییتو هم بگید سلامون یعنی سلامون علیکم ها؟ الا غیلن سلامن یعنی فقط سلام سلام الهی بر شما باز تحییتو هم مبتده سلامون خبر فیهان مطلقه به تحییتو و آخر و دعوا هم پس همدیگره که میبینن سلام آخر حرفشون آخرین جمله هم چیه؟ آخر دعوه هم؟ آخر دعوه هم؟ انل هم ان دود رب پس ال... اهل بهشت این ابتدای کلام سلام تهیت سلام همه با سلام شروع میشه در مجموعه در کنار هم تصویح و تقدیس سبحانکالله اللهم از هم جدا آخر و دعوه هم الحمدلله هم اله این آخر و دعوه یعنی آخر و قولهم شد؟ معلومه؟ یعنی آخر و دعای هم مبتداست؟ این ان ان مخفف از مسقل است زمیر شن محضوف اسمشه الحمدلله رب العالمین بگی گردی این ان ان مخففه هست بگو مسقل است زمیر شن محضوف اسمشه یعنی اندبو آخر و دعوه هم الله تحبیل به مستر میره آخر و دعوه هم هم الله رب العالمین کدوم ان با اسم و خبرش تحویل به مستر میره میشه خبر میشه آخر و دعوا هم آخر و دعوا هم, هم دو هم الله اول آلمی انا انه مخفف از اون حالا یه نکته اینجاست این دعواهم فیها سبحانک اللهم من جمله اسمیه تهیت هم فیها سلام جمله بگید اسمیه آخر و دواهم ان الحمدلله رب العالمین جمله اسمی این ستا جمله اسمی به هم عطف شده اینا چه نقشی داره قاعدتاً اینها حال هستند بگید حال هستند از زمیر همه من تحت هم شد یعنی اینها در بهشت هستند در خانه های بهشتی هستند از زیر درختان و زیر تخت ها و زیر خانه‌های اینها نهرا جاری است در تم کمال نعمتان در چه حالی هستند توی بهشت در حالی که زبانشون به ذکر الهی بگید مشهورت. نشد دعواهم فيها سبحانك اللهم و فيها سلامون و آخر و دعواهم ان الحمدو لله الحمدو مبتدا لله خبرش رب العالمی صفت الله شد معلوم خب آیه بعد رو. پس توی این فراز خداوند خوبها و بدها رو به ما نشان داد این دیکش رو گوش کنید حالا وارد بحث با این جماعت میشیم. میگه ولو ولو لو که می دیگه حرف شرطه حرف رو امتناهیم لی یعنی جوابش ممتنع شده چون شرطش ممتنه شده. مشخص شد میگم لوتیتنی لاکرم تو کرد ینی چی؟یعنی اگه اومده بودی احترامت میکردم یعنی نیومدی احترامت هم نکردم حرف و امتنناعن لامتننا. میگه ولو یا الله لناسه اشر استعجالهم هم بالخیره لقوزی الیهم عجل هم لقوزی الیهم بگید این یعجل و فل مزاره اینجا ولی منظور از این فعل مزاره ماضی استمراریه گرفته چی میگیم یا چون لو ماضی میاد دیگه بعدش حرف و امتناه این در گذشته جوابش هم ممتنه نگرفتی چی چی گفتم ها الان مثلا توی سوره حجرات، سوره حجرات. داریم که در مورد پیغمبر میگه لو یوتی اوکم دی کیر منل امره چچیک و مع نفیکن رسول الله لویوتی اوکم فی کیر منلمره لاعنت تو یعنی چی لویوتی اوکم یعنی اگه پیغمبر تو فول این بیست 23 سال اطاعت کرده بود از شما یعنی موافقت کرده بود و حرفان شما. فی کسیرن در خیلی از کارها 90 درصد کارها هر شما رو بوش میکرد یعنی چرا تو بعضی بوش کرده فی کسیرن نیست مثل مثلا جنگ خندق که به پیشنهاد سلمان بود اگر پیغمبر به طور مستمر در طول زمان از شما تبعیت میکرد لعنتون چی میشدید؟ بیچاره میشدید به سختی میفتادید به انت میفتادید بدبخ میشدید نشود چی گفتم یه نه؟ این یو نگفته او نبوده لوا اتاکم ای که دو لوا یعنی اگر اطاعت کرده بود از شما تو یه مرحله ولی لوا یو اکم یعنی چی یعنی اگر در طول زمان از شما به موتور مستمر اطاعت کرده بود لعنتتون بیچاره می شد سخت درست شد این لو عجل الله یعنی چی اگر خدا در طول زمان از زمان حضرت آدم سنتش بر این بود که خدا عجله میکرد خدا عجله میکرد لناس برای مردمان از شر اون شر و عذاب رو که اینا میخواستن اگر خدا در شر درست شد نسبت به اینها عجله میکنیم. یعنی مزدشون شنیم زش کافی داشتیم. لوی عجلو الله استعجالهم خیره. یعنی مثل عجله کردنی که نسبت به اینها دارد در بگید خیر. چی میشد لقوزیه الهی همجه رو یکیشون رو زمین نمیموندن همشون کارشون تموم میشد اما خداوند بگید بنا ندارد که در این عالم بگو یعنی شما نگید که خدا چرا تو همین عالم مزده هر کسی رو که بده کپ دستش بگید نمیذاره میگه اگر خدا میخواست این کار رو بکنه لقوزیه الهی معلم رو کار تموم میشد برای. یعنی این ها زنده نمیموندن چیزی ازشون باقی نمیموندن لقوز یا الیهم علام رو خب بعضی خوندن لقوز یا الیهم علام عجله خون لقوز یا الیهم عجله خون یعنی مرشول نخوندن معلوم خوندن فایلش میشه خدا لقوز یا هم اگه خونده بشه باز مشخصه که فیل خداست خف شده عجل اون نیه استجار هم رو چجوری معنا کنیم استجار هم یعنی تعجیلن مقولول مطلقه تعجیلن مثل مثل استجار هم مثل استعجالهم هم بالغیر. درستو تعجیلن مثل استعجال هم بگید خیر خب چی میگه خدا میگه ببینید شما از ما خیر میخواید آدم اینطوریه دیگه تو جای دیگه قران هم داره که این عصبانی که میشه میگه خدایا مرگمو برسون فلان کن بسار کن آه؟ میگه شما خیر از ما بخواید ما خیر رو درش عجله داریم بهتون میدیم ولی اگر شر از ما بخواید ما به گول خودمون خیلی سریع این کار رو نمی کنیم اگه این کاری کرده بودیمش کسی باقی نمی بود بله. اونم باز چیزشون نیست مزدشون نیست اونم مزدشون نیست اصلا ای این اقتضای اینکه که بخواهد جزای انسانی بشه که کار خیر کرده یا مجازات کسی بشه که کارو شر کردن اصلا قابلیتشو نداره ولو يعجل الله و این سنت خدایی نیستش که تا شما نفرین کردید گوشتون رو بگیره سنت خدایی نیست ولو يعجل الله لناس لناس متعلق به يعجل است اشر اشر شره یعنی شرهم آه یعنی اون شرقی که اینا درخواست کردن استعجال هم خیر یعنی مثل عجله کردن خدا نسبت به اینها در بگید کار خیر خب لقوزی الیه مجل هم لقوزی الیه مجل هم یا لقظا الیه مجل هم یعنی کار رو بر اینها چه میکرد بگید تمام چی بیشد کار رو باید نتمید؟ می بردن، حلاک می شدن پس میگه اگه خیر بخواید خدا خدای رحمانه، رحیمه خیر باشه بهتون میدیم دیم شعر که میخواید اینطور نیست مزدتون رو نقض بهتون می این ای فنظرو فنظرو این فنظرو فاش میتونه تونه فای سببیت باشه یعنی فای سببیته چون نظرها رو نمیشه عط کنی به جای یعجی رو یا بشه عط کنی به جای غزی هستن بلکه نتیجه است خب یعنی بنابراین نظراللزین اللا یرجونالغانا فی تغیانه نمیار بنابراین چی؟ بگو نظرها یعنی چی؟ یعنی نت رو کن. رهاشون میکنم یعنی نوم مهلت میدیم من نظر و لذین لا یرجون لقانه که قبلا گفتیم درست شد اون کسانی که لا یرجون لقانه هستن اینها نظر و لذین مهلت بهشون میدیم مهلت میدیم در حالی که فی توقیانه هم یه در حالی که تو گناه خودشون درن دارن همینطور بگید متحیر حرکت یعنی سنت استدراج سنت املا پس خداوند بگید عجله نداره مومن اگر دعا کند مشخص شده نه ادعونی استجب لکن دعای به خیر خداوند استجابت میکنه استجب لکن اما اگر کافر بگو عذاب بخواهد خداوند اینطور نیست که همین الان بگو عذاب او را برسونه چون نه قابلیت شو نداره اگر این کارو میکرد یه نفران تا حالا روی زمین از اینها باقی نمونده بود بلکه فنظر و لذینه لایرجونه لقاعنا فی توقیانه هم یعمهون فی توقیانه هم متعلق به یعمهونه باز مقدم شده برای خاطر اینکه سج آیه درسته یعمهون حال است از برای واوه لایرجون بله؟ نه, نه, نه نه نه نه فی توقیانه هم متعلبه بخوام دو دوتا حال درست کنیم به قول اینطوری دیدم ولی صحیح نیست یعنی لا یرجونم لغانه امیدی به لقای ما ندارم در حالی که یعماهون فی توقیانه در اصیان و گناه خودشون در دریای گناه خودشون قرقم یعنی از اون خطای خودشون هم بیرون نمیان چون خدا هدایت نمیکنه اینها رو اون مؤمنین بود که یهدی هم رب به ایمان هم اینا رو خدا هدایت نمیکنه. اینها اینا ها در همون کوری و تحیر خودشون موندن خب نظراللزین جونه. پس این شد این جواب این سوال شد که خداوند چرا در مورد مخالفین بگید عجله در عذاب اینها نداره چرا اینها رو زود ورشون نمیداره ببره جهنم میگه چون سنت خدا بگید از روز اول استدراج بوده امحال بوده ها املاء بوده و قصد نبوده که این دنیا رو محله بگو کیفر اونها قرار بده لذا مهلت میدی فنظره این فنظره پس فرضش چی بایه نتیجه چون ما عجله نداریم در شر رساندن در این مطلب اگر عجله داشتیم یه نفرم کافر تو حالا رو زمین بگو نمونده بود چون عجله نداریم پس بهشون مهلت میدیم تا در توقیانشون بیشتر قوته برشون نقطه سرمت و ازا حالا و ازا مثل انسانه از زور رو دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عن ظهره مر كأن لم يدعونا الى ذره مسه كذلك زين للمسرفين اضافه میشه به فر شرط منسوب به جزای شرطه ها معلومه نه مستقبل محقق الوقوعه یعنی همچین چیزی هست یعنی همچین چیزی بگید هست یقینیه اذا مسل انسان این انسان الانسان جنسه ها ها میگه اگر مس کنه مس اینا این تو لمس کنه مس کنه انسان رو از زور یعنی انسان اینقدر ضعیفه که با مس زور صداش در میاد ازا مسل انسانه از زور ال انسانه مقدم مفعول از زور رو این مقدم شدنش برای توجه ها. ازا مسل انسانه زمانی که مس کنه انسان رو الان توجهش چی می‌خواد انسان رو مس کنه میگه از زور ها یعنی جنس زور، زور یعنی آفت بدی دارد میگه اگر زر به انسان بلسید خب. گفتم از... مفهول اینجا مقدم شد برای چی؟ برای خاطر اینکه توجه رو همون موقعی که میخونی ازام مسئله انسانه آدم توجهش بیشتر جد میشه که چیه که قراره به این انسان بگو درس از ذنب دعانو دعا قائلش دعا خوبست میخوره به انسان دعانا دعا میکنه ما رو خدا را میخواند این ل جنبهی متعلق به عامل مقدره یعنی ثابتن لجنبهی جنبهی نائمن ل جنبهی یعنی مزدتجعا ازتجه یعنی به پهلو خوابید حاله لجنبهی برای همین هم که قائمان قائدن بهش عطر شده خوش یا نه میگه ازا مثل انسان از زر رو وقتی که بدی انسان رو برسد قطعاً این طوریه که دعانا ما رو میخونه ما دست به دامن خدا به ایغمبر عیمه محسومین دعانو لجم بهی به پهلو خوابیده خدا خدا میکنه قایدن نشسته بگید خدا خدا میکنه قایدن استاده میشه همه حالات یعنی فقط خوابش که ببره بگو و درازش دراسکش نشسته استاده هر جور که هست تا مشکلش حل نشده خدا خدا میکنه مضر تج با زاد و تای معفه. از یعنی اینطوری به پهلو خود. این شول جنبی چی شد ؟ پس چی گفتش؟ گفت اگر پشه بهش لگر بزنه دیگه خدا رو به نمیکنه. قشنگ در همه حالات. یک آن هم فروگذار نیست تا مشکلشو خدا حل کنه. بعضیا اینو اومدن گفتن این لجنبهی قاعدن قائما حال است از برای اون مسر. یه از نظر مسئله انسان یعنی حال است از برای انسان. این قشنگ نیست. ببینید چرا چون هم بین حال و عاملش جمله جواب بگی دعانا فاصله کرده. هم معناش این میشه زمانی که مس کند انسان رو بدی در حال خواب یا در حال بگید نشسته یا در حال ایستاده دعانا ما رو دعا میکنه در صورتی که نمیخواد اینو بگه میخواد بگه اگر بهش یه مشکلی برسه 24 ساعته مزاحم ماست همش نظر و نیاز و دعا و غیره و غیره اینو میخواد بگه یعنی قصد اینه که اون دعانا رو استمرار بده نه مصه رو داره شو؟ یعنی یه داره پشه بشلگت زن استمرار نداره اونی که استمرار دارد کدومه؟ بگید دعاناست مضاهمت در خونه ماست که دعانا لجم بهی گرفتی چی گفتم یا نه؟ لجم همه از داره عدوی درست میشه هم از نظر معنایی لجم بهی او دن اوغای من آدم نیست مثل این که مرحوم تبرسی این رو توی مجموع بیان عنوان کرده مزامن. بله مزامن. تعبیر من بود یعنی این درخواستیم که تعبیرش مزاحمه در خونه ما هست 24 ساعته ولمون نمکنه دعا دعا دعا دعا ناز نیاز فلما چی میشه اون موقع؟ فلما پس موقعی که کشفنا انهو زره آه. اون زرهی که بهش رسیده اینجا از زره اونجا الفلام داشت از زره یعنی جنس زر. هر هرچی میخواد باشه باشه یه مصیبت بهش رسیده اینجا منظور اون مال آدم است. اون نوعی که بهش رسیده رو برداریم مشکلش رو بگو حل کنیم ولن ما کشف نا ها یعنی از این انسان چی میشه مره جواب هم باز سرشون پایین میره همه چی یادش میره مره خیلی جالب با این مره این... مثل این میشه میگم تا مشکل شهر گردم راش کشید رفت این راش کشید رفت یعنی چی؟ یعنی دیگه براش چی مهم نبود مره بله ول بل میکنه میره دیگه در خونه ما وای نمیسته اونجا که گفتم مزاحم 24 ساعت در میزنه اینجا به محضه که مشکل حل کردیم بدون اینکه حتی تشکر کنه خدا در میره میره راج میگیره میره هیچ مرد این جالبه که ان لم ید اونا زر این که ان جملهش حاله برای فایل مرد رو میدازه پای میره انگار نه انگار این ها کهان نبوده دیگه کهان نهو مشخص شد وقتی که که با فعل مزاره میاد مشخص با فعل مزاره با جمله میاد با فعل میاد با جمله میاد معناش دیگه تشویح نیست تردیده مثلا من به شما میگم کهان نکه تدعو الاغلی مزید یعنی گویا تو داری دعوت میکنی به میهمانی، گویا مشغل شد یا میگم که نکرد تو علم اونا انگار تو داری به ما یاد میدی درس میدی یعنی ها مثل اینکه این که این فکر میکنی این که یعنی یعنی که انهو لمید اونا گویا انگار این اصلا ما از قبل دعا, دعا نکرده اصلا از ما چیزی نمیخواست انگار اصلا ما رو نمیشناسه لم ید اونا اینجا به حسب مضافه یعنی الى کشف زرن انگار که ما رو اصلا صدا نکرده بود برای کشف زرنی که مسته بود به او رسیده بود انگار نه انگار که اصلا ما مشکلی از اش بگید حل کردیم یکی زرشون این نزد پایین رو میره این جمله حاله که اند مخفف شده عمل نمیکنه، ولی معناش تردیده انلم ید اونا الى زرن یعنی الى کشف زرن مسته این خاصیت انسانه میگه انسان عجوله آه؟ موقعی که یه ذره از جنس زر رو سختی بهش میرسه دعانا ما رو دعا میکنه ما رو میخانه ای دعا دعا دعا دعا, دعا. اونم تو جمعی حالات یعنی یک لحظه هم قفلت نداره لجم بهی قایدن قایمن قاعد حالا بشکلشه که حل کردیم اصلا دیگه وای نمیسته مردن که انلم ید اونا الازر <سؤال> <سؤال> رنمسته حالا چرا انسان اینطوریه؟ میگه میگه که زویینل المصرفینم آقان و یه زویینه کی زینت کرده مجهوله فایلش دک نشده کیه شیطان شیطان هست که زینت میکنه باب تحقیر او آ، میگه کزالکه نه یعنی کزالکت تزین مفهوم اون یه چنین زینت بخشیی نه زینت شده زینت کرده شیطان لیل خدا تغییر از این ادمها کرده به مصرف خیلی عجیبها یعنی نعمت رو میگیم بگو قدرشو هم نمیدونه بهشون میکنیم هیچ به قول خودمون تشکرم ندارن همه چیزشون برست صد تا نظر رو نیاز میکنه به من از که مشکلش هم شد همه رو برانوش میکنه درست شد تعبیل به مصرف کرده خیلی عجیبه اسراف میدونی این چی دیگه. یعنی نعمتی که بهش دادیم شکرشو نکرده نعمت رو هم ده جا مسرف نکرده زوییه نه للمصرفین چی رو زوییه نه شیطون چی رو ماکانو یعملو تمام اون کارهایی رو که انجام میدادن همه رو شیطون براشون بگیر زینت میکنه زینت میکنه یعنی چی؟ یعنی کارهای زشت خودشون رو خوب میبینه آه زینت اینه دیگه زینت که میکنه کار زشت رو زینت میکنه این کار زشت رو خوب میبینه یکی از کارهای شیطون همینه شیطون میاد کار میکنه کار بد رو بگو به نوعی براش توجیه ایجاد میکنه وقتی توجیه ایجاد کنه این شخص به اون راضی میشه عجیب تعبیر به مصره این کزالکه جملهش مستنفه هست میگیم چرا انسان اینطوریه میگه چون شیطون بلش نمیکنه شیطون هر روز داره براش یه کاری رو بگو سرهم میکنه یه چیزی رو براش برس کزارکه زویین للمصرفین للمصرفین متعلق به زویین است. ما نایف کانو یعملونه آید سله عرض قطعاً قطعا هم شکل نعمت رو بجانیم چرا دیگه؟ خب این هم به جاش استفاده نکرده میدونم نه درست شد این کشف زرری که کردیم لطف ما بود این لطف ما رو هیچ کنه به قول مرمو پاسخی بهش نداد رفت دنبال کارهای خودش مصرف دیگه نعمت الهی را بگید در غیر جای خودش به کار بود یعنی شما نگاه که مصرف رو تو سوره اسرا چی میگه؟ میگه اینا اخوانه بگید شیاطینا بر شما یکی از بزرگترین الطاف الهی اینه که موانع رو از پیش پایی نفر برداره. این موانع رو که برمیداره این به جایی که بیشتر بیاد طرف ما؟ بگو بر میگرده میره مرک لم بیاد اونا میره طرف خودش. خب پس بنابرا این نعمت رو در جای خودش استفاده نکرد. شما موانه رو از پای جلو پای یکی برمیدارید انتظار اینه که او به طرفی که بیاد. خودتون بیاد خدا وقتی مانع رو برداشت این باید بیاد به طرف خدا اما مره این عقبگرد میکنه که هنلم ید اون آیلا زرن مسته خب بریم آیه بعد رو نگاه کنیم و لقد واو استینافی هست لقد جواب قصد لقد اهلکنا القرونم انقبل میگه این نیستش که شما فکر کنید که اگر ما مهلت میدیم اگر ما به قول مرور تو این دنیا بنای بر حساب و کتاب کشی نداریم این سنت ما نیست یعنی اما هم دادیم یعنی هر که هر غلطی کرد بگو هیچ کاری باشت تو این دنیا نداریم نه سنتمون بر این نیست که هر کسی هر غلطی کرد همین جا بگی پاسخشو بدیم اما این دلیل نمیشه که اگر یک مورد دو مورد هم کسی رو در این دنیا بگو قسمتی از اعمالش رو گوشمالش دادیم ببینید این نیستش که خداوند بنا داشته باشد ما در این دنیا کیفرمون رو ببینیم یعنی اگر از این دنیا من هرچی گناه کردم خب چوبشم خوردم اون دنیا میریم همه پاک همه میرم بهش بعضی از مسیحیین این چنین اعتقادی دارن ولی ما نه ما میگیم همه حساب و کتاب مال سرات هست و قیامت هست و اونچا حالت شما بله این حساب و کتاب مال اون دنیا اما اعمال ما در این دنیا اعمال خوب قطعا مزد خوب هم ممکنه تو این دنیا ولزین جاهد و فینال و نهدیه هم نوصولند اما از اون طرف هم اگر بدی کردیم این نیستش که بدی ما تو این دنیا به هیچ پای ما رو نگیره آثار وضعی داره بله اگر ما والدین شدیم عمرمون کوتاه میشه آثار وضعی هم داره تنبیه هم میشیم اما اینها مجازات عمل ما نیست مجازات ما نمبر آده این حرف الان نگاه کنید میگه چی لقد احلکنا ما به خدا قسم که حلاک کردیم القرون قرون جمع قرنه یعنی نسل های خیلی زیادی رو منقبل کنیم منقبل متعلق به احلکناست نه حال از برای قرون یعنی ما قبل از شما خیلی نسلها رو آد سمود ها خیلی از نسل ها رو هلاك کردیم لما زلمو این خیلی مهمه لما ما این ظلمو فعل شرطه لم جزای شرطش به قرینه اهلکنا چی شده هست شده یعنی لما ما ظلمو اهلکنا جرچه این سنت رو در مورد امت پیانبر ما ندارد متوجه شده این سنت رو در مورد امت ما سنت استیصال را بگید ندارد این امت مرحومن ما کان الله لیعذب هم و انت فیه لما ظلمو شد یا نشد؟ و جاعت هم رسول هم بلبگینات بعض این واب وابا حالیه گرفتن لم زلم و و جاعت هم بعد گفتن که این فعل مازی بعد از واب حال وابا شده قدم در تقدیر داره یعنی وقت جاعت هم که ما این رو نمی بزیریم. که بخوایم قدم تقدیر بگیریم این واب وابا, وابا آتفه است کی ما حلاک کردیم امت های بزشتر رو موقعی که ظلم کردن و جاعت هم رسول هم بالبینات و رسولان با همه معجزات و بینات به سراغ اینها اومدن ممکنه بگید که خب بعد اول جاعت هم رو میگفت لما جاعت هم رسول هم بالبینات و زلمون گرفتید یا نه آه؟ اون باعث شده که جنوب آباها نه باید برا مطلق جمعه یعنی اتمام حجت کردیم ظلم کردن بگید گوششون رو مالیدیم حالا یا بگو ظلم کردن ما اتمام حجت کرده بودیم گوششون رو مالیدیم و برای مطلقه بگو جه نفهمیدید چی گفتم آخو قشنگتر برای این که نقص ایجاد میکنی باید تقدیر قد بگیریم بیدیم مثل این میمونه الان تو قرآن تو سور یوسف داریم که قالون قالو یعنی که برادران و اقبلو علیهم مازا تفقدون این مازا تفقدون مفعول قالو است این و اقبلو علیهم چیه؟ حاله؟ خیلی گفتن حاله یعنی قالو و قد اقبلو علیهم برادرها کاروانیا ها برگشتن برادرها به اون دسته یوسف در حالی که بهشون رو کرده بودن ها این اینجوری برگشتن اینطوری می رفتن دیگه اونا که از پشت گفتن آیات ای هل ایره نکم لسارقون اینا برگشتن در حالی که برگشتن بهشون گفتن شما چی گم کردید نگفتن چی دزدیده شده گفتن چی گم کردید ما این وقا و علیه علیهم بعضه ده حال یعنی وقد عقبله بعضه بعداً جمله استینافی است وسط جمله معترضه است آ، متوجه یا نه بعضی گفتن عطفه یعنی وعقبلو عطف شده به جای قالو ما اینجا عطفو نمیپذیریم میوین چرا؟ چون اگه عطفشه وعقبلو علیه هم به قالو ضعف ایجاد میکنه مثل اینجا نیست زعفش چیه؟ عطف شده به جمله قبل از تمام شدنش اون مازا تفقدون مالا اونجاست اونجا چون عطف ضعیفه ما نپذیرفتیم حالیت رو هم با قد نیاز داره نمی درست شد پس بنابراین بقر و عقبره قر... رو و عقبره رو اینو داخل پرانتز میگیریم جمله معترضه هر کدوم جای بگید خودش رو داره اینجا داره عطف میشه هیچ اشکال هم نداره قصدش در واو اصلا بگید این نیست که کدوم جلوتر کدوم ها در واو واو میگن برای مطلق جمعه برای اشتراکه یعنی هلاکشون کردیم هلاکشون کردیم موقعی که اتمام حجت کردیم ظلمم کردن یا بگو ظلم کردن اتمام حجت هم کردیم یعنی این دوتا کار با هم شد آدم نشودن ما هلاکشون کردیم لذا بابا عاطفه اینجا بهتره و ما کان ولی یؤمنو و ما کان ولی یؤمنو اینم یعنی بابا آتفه است یعنی چی؟ یعنی اونجوری ما حجرت شده بود که اینا دیگه هیچ امیدی هم بگو به ایمان آوردنشون نبود و ما کانو لیو امنو این لامه میگن لامه جهود تحکید انکار میکنه تاکید نفیه میکنه متفشن یا نه؟ یعنی وقتی که قوم سالح از سالح شطور خواستند از دل کو ما هم بهشون شطور رو دادیم اینها ها شطور رو پی کردن یعنی اینا دیگه آدم بشه بگید نیستن هیچ امیدی به ایمانشون هم بگو و ما کانو لی شد یا چی از کردیم یعنی اتماع موجت شد سنت خدا در گذشته همین بود دیگه که اگر آمدند آیه الهی رو که درخواست کردن و دیده آنها کفرزیدن خداوند بگید سنت استیصال داشتی شکنشون میگه کزالکن نجزی القوم المجرمی یعنی المجرمین هم که گفته یعنی به خاطر جرمشون تعلیق حکم به وصف جزا رو اینجا معلق کرده به وصف مجرم بودن مشعر به علیته یعنی به خاطر مجرم بودنشون ما اینها رو کرد نجزی یعنی کزالکن جزا جزای این چنینی ما جزا میدیم به قوم پس تو دنیا هم مشمالی میدیم صفت القومه قوم مفعوله ناجی هست سم جعلناکم خلفاء فلارض ببینم امتهای قبل همه رو بگید به خاطر اعمالشون ترتیبشون دادیم هلاک کردیم سم سم یعنی چی یعنی روند ادامه پیدا کرد تا رسید به شما بله بس این یه آیه کوتاهه سم جعلناکم فعل و فاعل و مفعول اول خلائفه جمع خلیفاست سپس شماها رو جانشینان کردیم فلارض در این کره زمین در سرزمین اونها یعنی شما رو گذاشتیم جاشون اونا هلاك شدند ثم جعلناكم فل فلارض من بعدهم درست شد بعد از اونها یعنی من بعد هم من بعد هم بعد از این که اونها رو حلاک کردیم شما رو خلیفه قرار دادیم فلعرز و منبعده متعلق به خلافه شما جانشینان شدید در این زمین بعد از حلاک شدن اونها جانشین شدید بعد از حلاک شدن چرا؟ حالا چرا شما رو آوردیم جای اونها؟ لننظره این تحدیدها لننظره کیفت همان این لننظره متعلق به جهلناست نظرم میگه یعنی خوب نگاه کنیم خوب ببینیم لنن زاره تا ببینیم نحن و فایله یعنی لحن عملون ببینیم شما چه غلطی میکنید شما چه نکنیم تا ببینیم شما چه گلی به سر خودتون میزنیم اونا رو که علاق کردیم شما هم جاش نشوندیم شما شدید گل سرسبت خلقر آه امت پیامبر همه اینا به خاطر اینی که ببینیم شما چه میکنیم؟ لننظر کعیف تعملون این کعیفه حال است از واب تعملون خود عملون تعملون جمعهش محلن منصوبه جای دوتا مفعول لننظر است که میگن باب چی چی, چی جای مفعول لننظر است یعنی لنعلمن که میگن باب تعلیق گرفتید یا نه که ازدفا اومده بر سر مفعول تا ببینیم شما چه میکنیم پس خدا منت بزرگی گذاشته، اون امت‌های های سابق رو به خاطر اعمالشون حلاک کردیم مجرم بودن امانشون ندادیم آه؟ و جاعت خوم رسول هم بلبینات بلبینات متعلقه به جاعت خوم جاعت هم یعنی جاعت الگ. بله بله نه جمله یه کیفت عمله جمله کیفت عملون جای دو تا جای مفعول لنظره است از باب تعلیل و صلی الله نام نبی ناوال هرگاه در سر معمولین افعال قلوب چیزی بیاد که صدارت داشته باشه لفظا عمل نمیکنه محلا نمیکنه تو بحث افعال قلبی خوب یه کن اسم رو به من بده